از اتاق رئیس پاسکا بیرون آمد، توی راهرو کسی نبود، به حیات پاسکا رسید، سرباز یا درجه داری ندید، با عجل خودش را به خیابان رسند، آفتاب افتاده بود پشت شاخه‌های انبوه درختان کوهنسال چنار و سپیدار که در پیاده رو صفی استاده بودند. سری از کنارشان رد شد، خیابان هم خلوت بود، گاهی تراکتوری با رانندهی که چهرهی آفتاب سوخته و موهای آشفتهی داشت، رد میشد یا مطور سواری با سرعت میآمد و عبور میکرد مردم با شتاب به طرف خانههایشان میرفتند انگار از چیزی ترسیده بودند نمیخواستند بیرون باشند کم کم چراغ چند مغازه روشن شد با این حال نورشان از پشت شیشه های تیره و چرکتاب مثل سوسوی كمرمق فانوسی کهنه به بیرون میتابید هرقدر شب چترش را روی بام ها و پشتههای علف و هیمه اهالی باز میکرد شهر خالی از آدم میشد به نظر می‌رسید ارواح در پیاده‌روها در حال قدم زدنند و با هم در گوشی حرف می‌زنند. تونتر راه رفت. به پلی رسید که از زیرش رودخانه‌ای با شتاب میگذشت. پل قدیمی بود، با آجرهای سرخ و ساروج ساخته شده بود. اگر دو ماشین از روبرو رو آمدند به سختی می‌توانستند از کنار هم رد بشوند. احساس کرد رود برایش آشناست. حدس باید همانی باشد که از بنفشه دره عبور می‌کند و به دریاچه می‌ریزد. لابود از آنجا هم خودش را میرساند به شهر از پای پل پایین رفت و خودش را به حاشیه رود رساند چند خفاش در هوا قیقاج می رفتند و پششگار میکردند باد سردی از میان بیدها وزید و به صورتش خورد تصمیم گرفت از ساحل رود رو به بالا حرکت کند و در تاریکی شب خودش را به بنفش دره برساند رود پرکوب میآمد امواجان سر بر می داشتند و خود را به پایه های پل میزدند و بالا میجاهدند و با فشار از کنار پای ها میگذاشتند هوا تاریک شده بود از میان درختها کورسوی چند چراغ دیده میشد باد شوانه برخاسته بود و سرما برف نشسته بر بلندی کوه ها را همراه خود میآورد چوب دستی کژ را که کنار جاده بر زمین افتاده بود برداشت تا در آن تاریکی و خلوت قوت قلبی برایش باشد کم کم پرچین خانه ها را پشت سر گذاشت در بستر نرم و فراخ رودخانه، آب آرام میلغزید و میگذشت. گاهی برمیگشت و به عقب نگاه میکرد. چراغهای شهر به ابرهایی که پایین تر بودند، میتابیدند و آسمان شب روشن میشد. در مقابل پیش رویش همه جا تاریک بود. و راه مال رو که از کنار رودخانه پیچ و تاب میخورد و می و در میان چمنها مثل رشته باریک سفیدی دیده میشد. راه را گاهی آبهای ساحلی رود می یا یهان درون لایو لجن فرو میرفت و از آن طرف در میآمد اشباه مواج درختان در باد تکان میخوردند همانطور که مراقب بود تا به آبکندی فرو نرود جلوتر چراغی خاموش و روشن میشد نور در حال نزدیک شدن بود از جاده فاصله گرفت و پشت درختها پنهان شد نور چراغ بالا و پایین میشد و پیش میآمد نزدیک شد دو نفر بودند که یکیشان چراغ قوهای در دست داشت با صدای بلند با هم حرف میزدند هر دو بیل بر دوش داشتند و چکمه های ساقه بلند پوشیده بودند. میراب بودند. درباره سهم آب و زمان تقسیمان صحبت می کردند. تا زمانی که آنها دور نشدند از پناهگاهش در نیامد. وقتی خیالش راحت شد خود را به راه رساند و حرکت کرد. رفته رفته بوی جلبک و بوی ترش لجن در فضا پیچید و بعد صدای کرکننده صدها قورباغه که همزمان می خواندند شنیده شد. از تعداد درختها کم شده بود. از دور صفحه بلند و متراکم نیزار را دید فهمید که در پایین دست دریاچه و تا برف در راه زیادی نمانده خوشحال شد اما طولی نکشید که با شنیدن صدای پایی در پشت سرش شادمانیش رنگ باخت و تبدیل به نگرانی شد برگشت و نگاه کرد تنها های گزنه دیده میشد که در باد موج برمی‌داشتند صداها را نشنیده گرفت و باز هم پیش رفت چند لحظه بعد صدای سنگ ریزه‌های ساحل رود بلند شد کسی روی آنها راه میرفت. سر بر نگردند و به راهش ادامه داد این بار نوبت شکستن تراشه ها و شاخه های خشک درختان بود همینطور افتادن پای کسی در آب کند سرمایی ناگهانی زیر پوستش دوید موهای سرش راست شد ایستاد و ساکت ماند صدا هم خاموش شد تنها هیاهوی قورباغه ها بود که به گوش می رسید لرزش زانوهایش را احساس می کرد سر برگرداند جز جاده باری که کمی دورتر در تاریکی گم می شد چیزی ندید صدای کوبش قلبش را می شنید انگار پاهایش به میان گل و لای فرو می رفت احساس می کرد گورگ از پشت بوته و تنه درختها درخت ها نگاهش می کند خودش را به درخت بیدی نزدیک کرد و پشتش را به تنه آن تکیه داد و نگاهش را به درون تاریکی دوخت باد به رخت را آهسته تکان میداد. او هم همراه تنه تکان می‌خورد. چند دقیقه به همان حالت ماند صدای بلند و دست جمعی وزقها بود و عبور نرم امواج در بستر رودخانه حضور ترسناک ناک را به سنگینی احساس می‌کرد. حیولا در همان نزدیکی بود اما او نمی ببیند درون گودالی توی آبکند یا پشت تخت سنگ پشت کمرش را از تنه درخت بید کند و شروع به دویدن کرد نمیخواست آنجا بماند بوی گرگ و ترس همه جا پیچیده بود تند می دوید تا خودش را به دریاچه برساند پایش به بوته و پیچک گیر میکرد زمانی تا مچ پادرون چاله آب میافتاد صدای پای دیگری را هم پشت سرش می شنید. حتی صدای لهلهه بلند گرگ را که با ولع هوا را می بلید. به محوته بازی رسید تکختی در آنجا دیده میشد زمین زیر پایش نرم شده بود تکان می‌خورد. اما او میدوید و با سرعت پیش می رفت. در همان حال به گودال کم آمغی رسید ناچار پرید وقت فرود تا بالای زانو در گل لجن بود زمین می لرزید و او را درون خود می تعجب کرد داشت می پایین زمین می بلیدش. با هر تکانی بیشتر فرو می رفت. به هر طرف که چنگ می چمن بود که کنده می شد و توی دستش می ماند نامید شد یک جا ماند دیگر تکان نخورد. فهمیده بود که با هر تکانی اشتهای زمین برای بلیدنش بیشتر می شود. آرام ماند. زمین هم آرام شد. تکان نخورد و نلرزید. آهسته سر برگردند و به اطراف نگاه کرد. تا ساحل رود زمین یک دست مصدتح بود. پشت سرش روی ارتفاعی که از آن پریده بود تک درخت بیدی رویده بود و هایش در نسیم تکان می خوب. به دنبال گرگ اطراف بید چشم بابند. گاهی ی تکان می‌خورد و جابجا میشد. اما مطمئن نبود که گرد باشد غیر از همخانی پردامانه قورباغه ها وزوز مدام و آزاردهنده پشه ها هم بود که روی پوست عرق کردهش مینشستند نشستند و نیشش میزدند. برای اینکه تکان نخورد پشه ها را نمی نمی‌تاراند نیشه آنها را تحمل می کرد تصمیم داشت تا صبح بی حرکت بماند تا شاید در روشنایی روز رهگذری او را ببیند و به کمکش بیاید برای همین آهسته و آرام نفس میکشید تا تا اشتهای باطلاغ را تحریک نکند. اما ذره ذره داشت بل ایده به این ترتیب مدتی بعد اثری از او باقی نمی تا کسی نجاتش بدهد. برای رهایی از این وضعیت به فکر دیگری افتاد. نگاهش با شاخه های بید گره خورد. آنها آرام آرام در باد تکان میخوردند. احساس کرد بید با شاخه هایش برای او دست تکان می یا حرف یا فاصله کم نبود اما چاره دیگری نداشت یا باید کم کم و را می بلعید یا دستش را به شاخه بید می‌رساند تصمیم گرفت به طرف بید برود همیشه از بید خوشش می‌آمد از سایه‌اش از شاخ و برگش از تنه چغرش حالا بید در نزدیکیش ایستاده بود و شاخه هایش را به او تکان میداد. تنهاش را به طرف بید متمایل کرد و ناگزیر به چمن‌های رویده بر پوسته باتلاق چنگ زد اندگی به آن طرف سر خورد و بیشتر فرو رفت اشته های تحریک شده بود میلرزید و او را می بلید. تکان نخورد نفسش را در سینه حبس کرد آنقدر که احساس کرد خفه می شود آرام نفسش را بیرون داد و باز آهسته نفس کشید پشه ها بی امان نیشش می زدند سطح ها پشه بر روی سر و صورت و گردنش نشسته بودند بوی عرق آنها را هم تحریک کرده بود برای مکیدن خونش حجوم آورده بودند. گویا میدانستند به زودی بصل او را خواهد بل اید و تومه از دستشان میرود. لای موهای سرش نفوذ کرده بودند و بیرحمانه نیش سمی خود را توی پوستش فرو می بردند و با شتاب خونش را می مکیدند. حتی ابروها و موژههایش هم مملو از پشه بود. آبشخور چشم هایش برایشان لذیذ بود. همینطور اطراف پک و لاله گوشهایش که نرم و پرخون بودند. پشه ها را به حال خودشان گذاشته بود. چرا که می دانست با هر حرکت دست بیشتر بلعیده می شود صدای صدها گورباق سکوت مرموز باطلاغ را شکسته بود یک نفس می خاندند. گویا نمی دانستند که یک نفر در حال غرق شدن است به نظرش این آخرین صداهایی بود که می شنید. به آسمان نگاه کرد مشتی ستاره بر طاق تیره آسمان چسبیده بود صدای بالهای پرنده بزرگی را از پشت سر شنید و به دنبال آن شاخه های بید به هم سابیدند و تکان خوردند جغد بزرگی آنجا نشست چند بار بالهایش را باز و بسته کرد تا آرام گرفت سر بزرگش را چرخاند و به سوی او خیره ماند. چشم های درشتش در تاریکی شب می درخشید. چند لحظه چشم در چشم شدند و به هم نگاه کردند باطلاق تا کمر او را پایین کشیده بود در اطرافش حباب های درشتی تشکیل می شد و بعد می ترکید. زمین با حوصله او را میمکید و میبلعید. قورقور قورباغه ها و نیز وزوز وز پشه ها برایش آزاردهنده بودند. زمان میگذشت و او فرو میرفت. صدای قورباغه ها اوج میگرفت. دیوان وار میخواندند. احساس میکرد صدایشان را حتی ستاره ها هم میشنوند. حالا دیگر ماهیچههایش هم منقبض شده بود. از سرمایه ترس نمیدانست. مثل چوب خشک شده بود. شاید بدنش نمیخواست غذای نرم و راحتی برای باطلاغ باشد تنها سر و سینهاش مانده بود داشت فرو میرفت داشت تمام میشد جغد نگاهش میکرد ها شادمان میخواندند در آن حال سرش به سوی آسمان بلند شد نگاهش را به ستارگان دوخت و همه وجودش فریاد شد صدای انفجاری ناگهانی از هنجرهاش بیرون جست آهای آهای خودش از بلندی صدایش ترسید. ها ساکت شدند. پشهها پریدند. جوقد با آشفتگی بال زد و از آنجا دور شد. دیگر از آن سر و صدای کرکننده خبری نبود. تنها صدای نرم عبور آب از بستر رودخانه شنیده میشد و سوسوی دور ها. گویا این فریاد اشتهای باسلاغ را بیشتر تحریک کرده بود. ناگهان زیر پایش خالی شد و او تا شانه‌فرور رفت. فهمید که نباید فریاد میکشید. این را هم فهمید که دیگر کار از کار گذشته و فرصتی برایش نمانده دیر یا زود بل ایده میشد هیچکس هیچ وقت نمیتواند نشانی از او پیدا کند برای همیشه گم میشد نسیم خونکی وزید و پیشانی ملتهبش را مثل یک دست مهربان نوازش کرد در تمام این مدت تنها نسیم بود که اینگونه به او آرامش میداد بعد بید را لرزاند یکی از شاخه هایش به طرف او متمایل شد گویی دستی بود که به سویش دراز می شد. مرا بگیر باید میگرفت. چاره دیگری نداشت گذشت زمان به زیانش بود دیر یا زود خوراک کرم ها و زالو میشد. به سوی شاخه بید متمایل شد و دستهایش را به طرف آن دراز کرد و منتظر ماند تا یک بار دیگر نسیم به وزد و شاخه را به طرفش بیاورد چند لحظه بعد, بعد باد برخواست و شاخه را به آن سو خماند با تمام توان خودش را به طرف شاخه کشید و با یک دست آن را گرفت و نگه داشت. ها شروع به خواندن کرده بودند. بلند، یک نفس و یک صدا. چسبیده بود به شاخه بید و رهایش نمی کرد. تنها چیزی که مانع فرو رفتنش در میان باطلاغ می شد، همین شاخه سبز بازی گوش بود. مرگ و زندگیش به آن بستگی داشت، پس رهایش نگرد. پنجهش را آرام آرام پیش برد و شاخه را بیشتر به سوی خود کشید مراقب بود که شاخه نشکند با نوازش این کار را میکرد شاخه بیشتر خم میشد بیان که بشکند بعد دست دیگرش را هم پیش برد و با دو دست آن چسبید. تا گلو او را پایین کشیده بود تنها سرش بیرون بود و دو دستش که شاخه را محکم گرفته بودند آرام آرام خود را به شاخه آویخت و به آن سو رفت باتلاق رهایش نمیکرد. اندامش را به خود می فشرد اما او ذره ذره خودش را بالا می کشید. آنقدر که توانست پایش را به ریشه در هم تنیده درخت بید برساند و بیشتر بالا بیاید. به تنه بید رسید چمنها را زیر پایش احساس کرد خود را به زمین انداخت. از چنگال باطلاغ رها شده بود دیگر زمین او را نمی بلید بلکه مانند رخت خوابی نرم و آرام شده بود. خود را رها کرد دراز کشید. صورتش را روی چمنها گذاشت و بو کشید. گریهش گرفت. زمین را بوسید، سبزه ها را نوازش کرد، بینیش را لابلای چمنها فرو برد. هایش بر زمین مرطوب چکید. سیناش پر از هوای چمنزار شد. به پشت تاک باز. پشت دستهایش را روی زمین گذاشت و کف آنها را گشود. احساس کرد این بار می خواهد آسمان را با همه ستارگان چشمک زنش در آغوش بگیرد و همه را ببوزد مثل زمین چند بار ریه هایش را از هوای شبانه پر و خالی کرد و از جا بلند شد و به طرف درخت بید رفت روی تنش دست کشید پوست بید زبر و پر از شیارهای خشم بود پیشانیش را روی آن گذاشت و تنش را چند بار بوسید و به شاخه خمیده‌ای که او را نجات داده بود دست کشید چیزی مثل تشکر و قدردانی بعد از آن به طرف بنافشه دره به راه افتاد از ساحل دریاچه باید میگذشت سنگین بود لایه لجن به اندازه یک بند انگشت اندامش را پوشانده بود و نمیگذاشت راحت راه برود کنت پیش میرفت میخواست خودش را به دریاچه برساند جایی که با آنان نهار خورده بود بالاخره رسید از دیدن دوباره دریاچه خوشحال شد مثل این بود که پس از گم شدن راه خانه را پیدا کرده باشد لبخندی زد و با لباس گلالود وارد آب شد و در آن قوته شد وقتی از لای و لجن راحت شد به ساحل آمد و لباسهایش را درآورد و آنها را در آب شست و محکم چلاند و روی تخت سنگها پهن کرد تا اندکی خشک شود سپس خودش را به دریاچه سپرد به پشت خوابید شنای غور ای کرد و به هم همنوایی بلند آنها گوش داد آرام پیش میرفت که صدایی بکند مدت زیادی به همان حال شنا کرد. خسته که شد از آب بیرون آمد و لباسهایش را نیمه خیس پوشید و از کنار نیزار به افتاد. سردش بود. میدانست که به این زودی گرم نمیشود تند رفت تا زودتر به بنفش در برسد. صدای خوابالود چند سگ بلند بود. خروس جوانی می‌خوند. وقتی به خانه آنا رسید با کف دست چند بار به سینه در زد. چفت و زنجیر لرزیدند و کمی بعد صدای آنا از پشت در شنیده شد. کیه؟ منم آنا بازم اومدم خوب کردی اومدی نور چشمان در باز شد آنا در آستانه در او را بوسید و با تعجب گفت چرا لباسات خیسه؟ شستمشون دا خوش بشن خب میآوردی من به آب گرم بشورم حالا چرا خیسه خیس پوشیدی نگفتی سرما میخوری مادر؟ نمیشه آخه پر از لجن بود موقع اومدن افتادن تو باتلاق باطلاق؟ کجا؟ کدوم باتلاق باتلاق پای دریاچه؟ آنها جیغ گوتاهی کشید باطلاق پای دریاچه این وقت شب اونجا افتادی مادرت سر نماز بوده که سالم از اون تو در اومدی اسمایل نفس عمیقی کشید شبیه به آه نمیدونستم سمانا خبر نداشتم یه دفعه زیر پاهم خالی شد و فرو رفتم تو لجن هی hey فرو رفتم به خدا مرگ و جلو چشمم دیدم عمرت به دنیا بوده نور چشمم اونجا جهنمه هر چیزی رو درسته قورت میده، گاو، گاو میش، گوسفند، آدم. خدا میدونه چقدر آدم تو حلقم اون اجده رفتن و هیچ اثری هم ازشون نمونده. منم به این فکر بودم. اون وقت شب به جز حیوانا کسی اونجا نبود. همش میگفتم خدایا، نذار چشم آنا به این در بمونه و شب و روز انتظار بکشه و نفهمه چه بلایی سر من اومده. آنا بغس کرد، صدایش لرزید. خدا رحم کرد به مادرت، به من. خدا دوباره تو رو به ما داد شکرت خدای مهرب و به اتاق رفتند اسمایل لباسهایش را عوض کرد و زیرپوش خشک پوشید آنا برایش رختخواب خواب کرد و همانجا یک لیوان چای گرم به دستش داد اسمایل دو دستیان را چسبید تا گرمای استکان زیر پوستش بدود و از آنجا به قلبش برسد چند دقیقه محکمان را چسبید و به پیچ و تاب ملیه بخاری که از دهان لیوان برمیخواست خواست خیره ماند سپس با لذتی عجیب آن را مزه مزه کرد و آرام خورد و راحت خوابید. خودش را دید که در حال بلعیده شدن بود. سرش به سوی آسمان بود و اشک میریخت کمک می‌طلوید. ستاره‌ها سوسو می زدند و جغد بزرگی روی شاخه درخت نشسته بود و با چشمای درشتش نگاهش می کرد. کمی بعد تمام قدر در حلقم باسلاغ فرو رفت و تنها چند حباب درشت بیرون زدند و چند لحظه بعد آنها هم ترکیدند و تمام شد. جغد پرواز کرد و رفت صدها و هزارها قورباغه ساکت شدند و مدتی سکوت کردند آنگاه دوباره آن در ری سرسبز و بزرگ را روی سر گرفتند